رخداد نادرستی نظریهای نژادی هویت تاریخی ایرانیان از دیدگاه انسانشناسی با به نام خدا باعث سلام و ادب احترام خدمت شنوندگان گرامی خیلی خوشحالیم که در قسمت 34 برنامه برابری در خدمت شما هستیم و همراه جناب آقای ایران مهر گرامی ما در برنامه‌های گذشته رسیدیم به شیوه های زندگی انسان های اولیه در شرق آفریقا انسان های اولیه حالا منظورمون انسان های اجداد خودمون میگم و انسان های دیگر خب بودن در جاهای مختلف بودن اجداد خودمون رو در واقع منظور بنده هستش که اونجا شروع میکنن به در واقع مهاجرت حالا این مهاجرت های اولیه در چندین هزار سال یا شاید در چندده هزار سال شروع میشه ما نقشه‌ای که شروع میشه این مهاجرت از شرق آفریقا نشون میده که از نوار شمالی آفریقا این مهاجرت شروع میشه یعنی به سمت مراکش الجزایر امروزی لیبی مصر ورودی خاورمیانه میانه و نهایتا اون چیزی که ما ادعا میکنیم و تقریباً نشون داده تحقیقات به فلات ایران فعلی و کلن خواهر میانه و بین نهرین هستش که انسان ها میان مستقل میشن حالا نوع استقرار و دلیل این استقرار و نشان های این استقرار رو ما فکر کنم را قسمت 36 بهش برسیم و صحبت در موردش خواهیم کرد. در مورد مسئلهی که عرض کردم بنده منبعی رو برنامه پیشین معرفی کردم که اتفاقا اونجا هم از نوع استقرار هایی صحبت می‌کنه که از شرق آفریقا شروع کردن به قسمت نوار شمالی از جبل الطارق خب حالا چرا از اونجا شروع کردن عرض به حضورتون که این بر به خصوصیات آب هوایی و تغییرات آب هوایی کره زمین خصوصاً خط استوا و نصف نهارهای بالای خط استوا هستش که در این دوره زمانی تغییرات آب هوایی شگرفی داشتن تغییرات آب هواییش خیلی سریع شده بود این تقیینات سریع آب و هوایی باعث شده بود که این جمعیت ها خیلی زود حالا زود منظورمون شد شاید الان ما داریم مثلا با هواپیما سه ساعت چهار ساعته مثلا نصف کره زمین رو میریم موقع منظورم از زود زود یعنی هر سه چهار هزار سال یک بار برای اون موقع خب واقعا یک لحظه بود هر سه چهار هزار سال یک بار در واقع جاهای زندگیشون عوض می کردن دلائل این زندگی ریشه در همون بلد تغییرات آب و هوایی داره و به اضافه این که یک نوع تنوع, تنوع و, تنب و هم به وجود اومده بود در نسل های اون موقع آقای جیسون میگه که اتفاقا همین تغییرات بسیاری از ریشه های جهش جنتیکی که ما در مغز ریشه در انسانه ه این مهاجرت کبیر مهاجرت کبیری که یک چیز بوده سیل و چهل و سال طول میکشه و بعضا پنجاه هزار سال و از مسائلی ها... که به چالش میکشیدم انسانها رو و باشه رو رشد بله. بیشتر مغزی, بیشتر مغزی می شده که تو اون کتاب میگه که اتفاقا این انسانها تا قبل از رسیدن به خاورمیانه 17 جا مستقر شدند با آرام آرام این گروه جمعیتی اومدن رسیدن به خاورمیانه البته این مهاجرت اولیه به یک بار نبود که همه به یک بار تصمیم بگیرن حرکت کنند این 30 تا 40 هزار سال در مجموع طول کشید در مجموع طول کشیده و به اضافه‌ی اینکه همه‌شون یک جا همه اون 17 تا قبیله‌ای که در واقع شرق آفریقا حتی این تخمینه ببینید تخمین 17 تا قبیله بر اساس یافته‌های شناسی هستش که اینالشون میده تمام این 17 قبیله یه جا تصمیم نمیگیره حتی گفته میشه که قبیله‌ای هم تا تصمیم نمیگره. یه حالت قریبی زیمانند هستش که تصمیم میگیرن حتی برخی ها این مهاجرتو تصمیم گیریه برخی از حتی پرندگانی که مثلا تصمیم میگیرن به یه جاهایی مثلا ایلاق قشلاقی حرکت کنن با این هم تاش گرچه تشبیه شاید درستی نباشه در مثلا مناقشه نیست ولی این که مثلا یک مهاجرتی بوده که یک تصمیم اوغلایی و بیان مثلا با هم دیگه مشورت بکنن چون اون موقع هنوز جبان. زبان به این شکل زبان مشترکی ما الان به این حرف نداشتن. لذا یک حالت طبیعی نیا طبیعی چون, چون نیاز و نیاز نشت جمعیتی های دکتر بله دقیقا نشت جمعیتی از که شکی... جانوران هم همینطورن؟ بله بله یعنی برخی جانوران بومی آمریکای جنوبی بعد از میبینیم مثلا سنگوارهاشون تو آمریکای جنوبی هستن هم الان مثلا بعد چند هزار سال دانشمندان میگن که الان این گونه تو آمریکای شمالی هم زندگی میکنه بله این معنیشی ای نیست که تصمیم گرفته پرنده حالا مسافرت کنن با امریکای شمالی. نشت جمعیتی پیدا کرده از طریق آمریکای مرکزی کم کم کم کم الان سرکلاش توی آمریکا شمالی هم پیدا امریکا پیدا شمالی هم پیدا شده بله لیز ما اینجا می‌بینیم که این حدود 17 تا 21 مورد من یادم هستش که 17 تا 21 مورد تو این هزار سال تغییر جایگاه مینه و این خیلی عجیب هست و این راسته در واقع همونجوری که شما فرمودید ساحل مردم ها و این ساحل تا به سابقه نشه نداشه که تو کره زمین یک موجود زندگی این همه پی در, پی در واقع جایگاه زندگی خودشان یعنی هر 2000 سال یک این جا، سرعت تا حالا سابقه نداره بله تا با تو یعنی تو تا, تا چهل هزار سال اینجور این مسیر بله. رو تقنیم. این مسیر 20 تا به طور متوسط 20 تا محل زندگی تغییر این در واقع سابقه این و میان میرسن به خواهر میانه اینجا من حالا بحث رو ما اینجا نگه می‌داریم که حالا میرسن به خواهر میانه کجا مستقر میشن ما با این اصلا فعلا به قسمت سی و اینجا یه بحثی مطرح هسته چینا با ایران قبلا ما در موردش بحث, بحث کردیم جالبه در قاره اروپا داریم گوریز می‌زنیم به ناندرتال ها. که یک ابهامی هست در این مورد که ما در مورد ناندرتال که توی اروپا زندگی میکردن تو قاره اروپا گونه‌ای از انسان که ما داریم و میبینیم در میان و ها. در مورد اینها اطلاعات انبوهی ما الان در بله. دی‌ار داریم زیاد Career... بله زیادم در زیاد هم صحبت میشه بله خیلی هم زیاد هم دربارش صحبت میشه آیا مثلا در یه جایی مثل اندونزی یا در جایی مثل ایران افغانستان اگر مثلا این همچین فسیلی بود اینقدر واقعا صحبت میشد در موردش مثلا انگیزه این همه بولد کردن این نوع انسان نماها و این نوع موجودات چی هستش اصلا چه هدفی در واقع دنبال میشه دنبال چی که مثلا میخوان میگن که آیا مثلا اجداد اونها بودن اونها مثلا در واقع افراد بله یک پرسی شاید تا میشه مثلا های دکتر که همین الان بدیم تو خیابون بله به آدمایی که میرسیم بپرسیم یکی یکی بگیم شما اصلا میدونین نئ اندرتال چیه خوردنیه پوشیدنیه پوشیدنیه یه, یه؟ درصدیشون میگن بله ما میدونیم یک انسانای به نام نئ انسان های نخستین هستن خب بله همزمان ازشون بپرسیم میدونی انسان جاوه چیه واقعا نمیدونن من میخوام این, این درصدها شاد با هم فرق بانه. من احساس میکنم 60-70 درصد مردم جامعه یک بار تو زندگیشون انسان ناندرتال و از تلویزیون رسانه ماهواره نمیدونم کتاب شنیدن من فکر نکنم 5 درصد مردم حتی شنیده باشن انسان جاورو در یران واقعا داره من این علتش چیه یک بار دکتر مویبی فهم چون اروپا محل سردیه اینا توی یخچالا و سفخانه شون باقی مون بنابراین بیشتر تونستن درباره شون بله یه فرضی هست ایه ایه فرضی است مطرحه آ دکتر اینو چالش رو مطرح کردن که ما صحبت کنیم که چرا اینقدر همه درباره از کارتون عصر جدیدی که ما بچگی میدیدیم همینو میان و میخوان به گونه اینو اجداد مستقیم اروپایی‌ها معرفی کنن که حالا بعد ما نشون میدیم با شواهد که این اول معروف بچه‌گانه است حالا ما خب دیگه حالت ای داره پیش از اون آیدوکتور که من یک توضیح کوتاهی در این باره بدم یعنی نظریات که هست رو در این باره بگم مگه پرسشی برام پیش اومد اون چی که ما گفتیم بعد پای شواهدی که دانشمندا کشف کردن عرض کردیم این بود که در واقع اول انسان نماها یا انسان سایان در جنوب آفریقا پیدامدن بله بعد به سمت شمال همش حرکت کردن که میشه همون پهنای قسمت شمالی قاره آفریقا یعنی در واقع اول به حدودای شرق آفریقا رسیدن یعنی شما همین الان هم از جنوب آفریقا راه شمال رو در پیش بگیرین بشارتو آفریقا رمیرز یک نشانگر ژنتیکی یا یک هابلو گروپی تکامل پیدا کرد از همین انسان‌هایی که دیگه حدود 10000 سال پیش بودن. اینا شدن انسان‌های آفریقایی یا اون چیزی که مصطلح میگن سیاه‌پوستا. اینها بیشتر متمایل شدن به غرب قاره، یعنی جایی که امروز کامرون و غنا و غنا و سیرالئون و اینجا ها هستن. اونایی که در شرق آفریقا موندن کم کم شروع کردن به نشته به بیرون از آفریقا که اومدن تو آسیا در باقی. درست. من تا حالا منبعی رو بنده ندیدم احتمالا شما وقتی ذکر کردین حتما یک منبعی از این آقایونی که فرمودین انسان شناسند، من مسیر، جبل و تارق و نوار شمالی آفریقا به سمت کنیا و بعد به سمت آسیا رو جایی نیده بودم بله بله. پجورش خاصی انجام شد. بله, بله پژوهش خاصی انجام شده که اتفاقا حالا جبل و هم یه گروهی از انسان ها بله. همین انسان هم چون اومده بودن پخ شده بودن جلست. به سمت شمال آفریقای که حرکت کردن تو شرق آفریقا مینا فقط تو شرق آفریقا نبودن جلست. جمعیت امدهشون تو شرق آه. آفریقا بودن جامعه‌ی خمی خب با با, با, با مرکزی شرقی آفریقا. مرکز شرق آفریقا ولی به سمت غرب یه داشون رفته بودن که اتفاقا اون‌هایی که من موقع که در, موقع در مورد مهاجرت صحبت می‌کردم عرض کردم که اولا این مهاجرت دفعتن نبوده و همه این انسان‌ها تصمین این انسان‌ها موندند بله. و موندن همین سیاه‌پوستا در موقع از نسل اونها در واقع هستش و ما مدعی هستیم که این نسل سیاه‌پوست اتفاقا اون‌هایی هستن که اونجا موندن و اصیل‌ترین و بومی‌ترین بله. افراد اونجا هستن که اتفاقا تو همون غرب آفریقا موندن بله. و بعد پخش شدن به سمت بله. جنوب و جاهای مختلف و کلن قاری آفریقا در اختیارشون هست ولی این انسان هایی که اجزاد ما بودن و توی شرق آفریقا زندگی می کردن یه چیز اون بیسیزا سال اونجا زندگی کردن دیگه بله. و تو اون بیسیزا سال گسترش پیدا می کردن. خصوصا به سمت سواهل. درست. و به سمت شمال طبیعی. چون خوش آب و هاتر هست بله. و این شمال هم سمت شمال شرق و هم سمت شمال قرم چون شمال قرم آفریقا در واقع آب و بهتر از شمال شرق آفریقات آب و هوایش اوگیانوسیه بله ده. اوگیانوسی تره. ولی باز هم به خاطر تغییرات آب و هوایی که در اون موقع در کره زمین رخ داد اونها متمایل شدن باز هم به سمت شرق و به سمت شرق هم باز هم مهاجرت کردن و ادامه دارن تا رسیدن به خاورمیانه. میانه بسیار خیلی ممنون درباره اون چالشی که شما مطرح کردین حالا برگردیم سر همون ما بعد در یک برنامه صدای امید تدارک دیده که از عالی هم به حال مهوریت دارین اونجا ما میپردازیم به اینکه اصلا اروپا یعنی چی اروپا امروز که میدونیم کجاست اروپا در تاریخ کجا بوده یعنی چی از کجا بوده اونو میپردازیم اون چیزی که مستلح امروز بهش میگن اروپا از همین تقریبا غرب دریای کاسپی دریای خزر میگن تا انگلیسانو میگن اروپا. بعد اونور میگن همون که هم کارم کردن. داره. مثلا این... شما اتحادیه فوتبال اروپا الان مثلا از ازبکستان تا قزاقستان الان اومده. خدمتون بگم که اما در واقع این مرزها اینطوری نبوده. افلاتون توی بالا بعد ما تو اون قسمت‌ها اشاره می‌کنیم افلاتون توی بخشیش اشاره می‌کنه میگه ما آسیایی‌ها به امان آمدیم از هجوم و حمله این اروپایی ها یا شمالی ها که به ما حمل بله. کنند یعنی خودشون رو آسیایی بله دهیگر ده. حالا به هر حال این مربوط به این بحث ما نیست اینی که اصلا این مغلتهی ای که کجا اروپاست و چی اروپاست خیلی برای اروپایی مهمه مهمترین چیزها تو فلات ایران تو قلم روی میانی تو چین کشف بشه اصلا کسی نمیفهمه کافیه کله سزار تو زیر مترو روم پیدا بشه بله دیگه اوپو از اون صفحه اصلی یاو بگیر تا همه جا دیگه این اتوب اوکرام اینا خیلی علاقه دارم بگن که ما از جای یمدیم ساکنان چندین ده هزار ساله اروپاییم بله. اروپا مال ماست تمدن رو ما به وجود آوردیم همین ستری هم که میبینین ما همیشه داشتیم همیشه داشتیم قدیمی تر از همه هم هستیم. انسان اولیه یعنی آندرتال اونو اینطوری عنوان کردن دیگه انسان اولیه آندرتال که با سنگ و چوب و اینا کار میکرده بعد تکامل پیدا کردن شدیم ما بعدن ما به بقیه جهان گسترش پیدا کردیم شدیم شماها بله منظورشون در واقع منظورشون اینه در واقع این. در واقع, واقع صورتی که نقشه‌های ژنتیکی که موجوده به خوبی نشون میده که بعد از اینکه انسان از شرق شقاف خارج شد اولا در آسیای غربی سکونت پیدا کرد بله از آسیای غربی بود که به سمتی که نشت. پیدا کرد به سمتایی که میتونست از جمله به شرق خودش به شمال هند و به فرارود جایی که تقریبا آستانه مرزهای غربی چین میشه و به سمت شمال خودش وقتی یک کم از سمت، وقتی شما از شرق آفریقا وارد آسیا میشین یک کم به سمت شمال برین راهی که میتونین برین به کجا میرسین به حدودای مثلا سوریه بعد به حدودای اروپای شرقی بالکان به اینا به اینجا میرسین دیگه. بله. حالا بعدش هم ممکنه کم کم این انسان‌ها چند هزار سال نشت پیدا کنن به داخل اروپا. به اون داخل, داخل قاره‌ای قاره قاره که اروپا نامیده میشه، خب؟ حالا خب اینا کفایت میکنه که یک سنگواره مثلا جنوب مثلا صربستان پیدا بشه. میگم بفرما ببین اروپایی. بله. یعنی با تعریفی که اونا امروز کردن اینطوری میشه. و خیلی هم علاقه دارن که میگم بگن که ما هم مسیری که گفتم مسیر ذهنی که گفتم و ترسیم کنن این سیادتشون رو بگن مربوط به الان نیست مربوط به 400 هزار سال قبل تقنید. شما 400 هزار ساله که زیر نظر ما, ما... ما هستید اصلا دوست ندارم بگن انسان از شرق آفریقا اومد بیرون اول تو آسیا غربی سکونت پیدا کرد بعد یه گروهشون نشت پیدا کردن به اروپا و اینها همه از یک نوع انسان هستن و هیچ وقتم دوست ندارن خیلی واضحه بگن که نئاندرتال‌ها اصلا نابود شدن نیستن یه گروه مثل انسان جاوه انسان راستخامت از آفریقا خارج شد بعد در بومبست تکاملی نابود شد ناندرتال ها اول نرفتن به اروپا بله اصلا اروپا بعدها رفتن اول آمدن به آسیه غربی بعد نشت پیدا کردن به چند جا آخر جایی که سنگ یافت شده بعد, بعد نابود شدن همون اروپا و آسیه غربیه امدتا محل برخورد آسیه غربی به اروپا این به اصطلاع باید خیلی تو یک برنامه جدا باید توزی داده شده که این امپراتوری رسانه اینه بله. داره چیکار میکنه. بله من دیگه ختم میکنم صحبت و شما خواهش میکنم فقط من ارزی کنم اونجایی که شما گفتین که انسان ها در شهر آفریقا به جایی رسیده بودن تکاملشون 100 هزار سال پیش که کم کم آمیزش جنسیشون رو در یک جای به این حالت یک شرم و حیا پدید اومده بوده بله. تو میون این گروه ها. خب ما متاسفیم که دیگه الان رسانه‌های ماهوارایی که همش خب دست جهان غربه الان دارن تو کشورهای مثل ما و کشورهای شرقی چه مستقیم چه غیر مستقیم با عرض تعصف و خجلت فراوان سکس گروهی رو ترویج و ترغیب میکنن و, بله. و میخوان یک طوری قبحشو بریزن و بگن, <تصفح> بله. بگن یه چیزی بله چیز از... چیز که صد بیش انسان بله صد صد هزار سال پیش انسان‌ها راयत میکردن میخوان میگن اشکالی نداره, اشکال نداره. نداره خیلی خوب خیلی خوب. خوب. خوب بله متشکرم خیلی هم چند دقیقه هم از وقت برنامه گذشته قسمت 34 رو اینجا به پایان میرسه شما شنوندگان گرامی رو تا شروع قسمت 35م به خداوند متعال سپارد خدا یار نگهدارت